گان یک سال پیش چهارشنبه 16 می 2012 سوم میتونم صدای اومدن قطار رو بشنوم ریتمشو با قلبم میشناسم سرعتش همونطور که به سمت بیرون ایستگاه نورسکوت شتاب میگیره منظم میشه و بعد از دور زدنش تو پیچ مسیر سر سر کند میشه و همونطور که تو فاصله 100 یاردی خونه داره رو علامت توقف میکنه صداش از تلق تلق به گرومپ گرومپ سنگینی و بعد گاهی به صدای گوشخراش ترمز تبدیل میشه قهوه‌ام روی میز سرد شده اما من به شکل لذتبخشی کرخت و تنبلم اونقدر که به خودم سهمت نمیدم برم یه فنجون دیگه بیارم گاهی وقتا من حتی به قطارهایی که رد میشن نگاه نمیکنم، فقط بهشون گوش میدم. صبح اینجا میشینم، چشمامو میبندم و گرمای خورشید رو پلکام سایه رنگی میزنه. میتونستم همه جا باشم. میتونستم تو جنوب اسپانیا باشم، تو ساحل. میتونستم تو ایتالیا باشم، سینکوتر. تو همه ی اون خونه های رنگی قشنگ و گذرگاه قطارهایی که توریستا رو میبرن و برمیگردونن. میتونستم برگشته باشم هلکام با سر و صدای جیغ مرغای دریایی تو گوشم و نمک رو زبونم و قطار اشباهه در حال عبور روی خط آهن زنگار گرفته نیم مایلون برتر قطار امروز توقف نکرد لغزید و آهسته گذشت میتونم تلق تلوق چرخاشو توی مسیر بشنوم حتی میتونم تکونشو حس کنم. نمیتونم صورتهای مسافرا رو ببینم و میدونم اونا درست هر روز از هومه به شهر و از شهر به هومه سفر میکنن تا به یوستون سری بزنن و پشت میز بشینن اما من میتونم تو رویاش باقی بمونم رویای سفرهای عجیب و غریب و سرگزشتهای آخر خط و اون برتر ذهنم میره به هولکام هنوزم که فکرشو میکنم عجیبه یه صبحی مثل حالا با همچین آتفهی همچین هوسی اما من فکر میکنم باد توی علفا میپیچه آسمون سقف سفالی بزرگی رو تپ ماهورا موشا به خونه حمله کردن و خونه داره خراب میشه پر از شمع و خاک و موسیقی مثل رویایی که حالا من دارم احساس میکنم قلبم فقط یه ذره تندتر میزنه میتونم صدای پاش و رو را پله ها بشنوم که منو صدا میزنه مگ یه قهوه دیگه میخوای؟ سر باطل شده من بیدارم اصر به خاطر وزش باد شمال سردمه و از اون دو انگشت ودکایی تو مارتینی گرمم بیرون تو تراسم منتظر اسکاتم که بیاد خونه تصمیم دارم وادارش کنم که منو برای شام ایتالیایی ببره کینگلی رود ما یه عمر لعنتیه که بیرون نرفتیم امروز روز خوبی نداشتم به نظرم درخواستم برا بیرون رفتن یه جورایی به خاطر ماجرای خیابون مارتینزه پایین تو آشپسخونه مشغول بودم که صدای جیغ زنی رو شنیدم. یه صدای ترسناک. فکر کردم یکی کشته شده. دویدم بیرون توی یه باغ اما هیچی ندیدم؟ هنوزم میتونستم صداشو بشنوم. اون صدا زننده بود و درست توی قلبم فرو میرفت یه صدای تیز و بیچاره داری چیکار کار میکنی؟ تو داری با اون چیکار کار میکنی؟ بدش به من اونو بده به من. به نظر می رسید که همینطور ادامه داره انگار فقط چند ثانیه طول کشید من دویدم بالا رفتم تو تراس و تونستم از بین درختا دو تا زن و پایین حصار ببینم یه چند تا باق اون ورتر یکی از اونو گریه می کرد شایدم هر دوشون و یه بچه هم صداشو انداخته بود تو سرش فکر کردم به پلیس زنگ بزنم اما بعدش به نظر رسید که همه چی آرومه زنی که جیغ میزد دوی تو خونه. تلو تلو خورد و بعدش درست یه جوره گیت شد و دور باغ چرخید واقعاً غیرعادی بود خدا میدونه میخواست چیکار کنه با این حال بعد از هفتهها این هیجان انگیزترین چیزی بود که میدیدم. حالا احساس میکنم روزای من خالیه و برای رفتن به گالری هیچ اشتیاقی ندارم واقعاً دلم تنگه دلتنگ گپ زدن با هنرمندا من حتی دلتنگ همه اون مومیاییهای زیبای که سل که اونجا پلاسن و فنجون قهوه به دست بی خیال نگاه کردن به تصاویرن و با دوستاشون حرف میزنن. آدمایی که حتی جسی کوچولو تو مهده کودک بهتر از اونا نقاشی میکشه. بعضی وقتا دوست دارم ببینم میتونم کسی رو از قدیمان پیدا کنم؟ اما بعدش فکر میکنم حالا باید بهشون چی بگم؟ اونا حتی مگانی رو که شاد و متعهل باشه و تو هومه شهر زندگی کنه یادشونم نمیاد. در هر صورت من نمیتونم خطر نگاه کردن به گذشته رو به جون بخرم. این کار همیشه ایده بدیه. من منتظر میشم تا تابستون برسه. بعد به خاطر کارم مجبورم به گذشتم برگردم. به نظر میرسه به خاطر شرم از هدر دادن وقته. هدر دادن این روزهای بلند تابستون. من یه چیزی پیدا میکنم. اینجا یا جای دیگه. میدونم که پیدا میکنم. سهشنبه چهارده آگست صبح خودم و دوازده. صبح خودمو دیدم که وایستدم جلیه کمد لباس برابار صدام به قفسه شکیل لباس زول زدم یک کمود عالی برای مدیر یک گالری کوچیک هنری که البته لبش پریده این عبارت هیچ معنی نداره پرستار بچه خدا خود این عبارت باعث میشه پسش بزنم شلوار جیم میپوشم با یه تیشرت و موهامو عقب میدم حتی به خودم زحمت آرایش کردنم نمیدم هیچ نقطه اتکای نیست یعنی قرار تمام روزم و خوش و خورم با یه بچه بگذرونم میپرم پایین مثل از جنگ برگشته ها. اسکات داره تو آشپزخونه قهوه درست میکنه تا منو میبینه نیشش باز میشه و زودی حصلم سر میره باز لب و لوچم و کش میدم تا لبخند بزنم قهوه رو دستم میده و میبوستم. دلیلی نداره تا به خاطر این کار سرزنشش کنم. فکر خودم بود. خودم خواستم این کارو بکنم. بشم یه پرستار بچه برای آدمای پایین دست خیابون. فکر کردم این کار شاید جالبم باشه. خیلی بیعقلم. احتمالا دیوونه شدم. سرد دیوونه کنج کاف. من میخواستم ببینم. فکر میکنم از وقتی این فکر به سرم زد که داد و تو باغ شنیدم و خواستم بدونم چی شده. البته نه اینکه چیزی پرسیده باشم آدم واقعا نمیدونه میدونه؟ اسکا تشویقم کرد وقتی این پیشنهادو بهش دادم انگار رو ابرا بود اون فکر میکنه گذروندن وقتم با بچه ها به من قابلیت تخم گذاری میده ولی این کار در واقع نتیجه عکس داره وقتی من از اونجا بر میگردم و میام خونه حتی نمیتونم منتظر بشم که لباسمو در بیارم باید زودی دوش بگیرم و بوی بچه تنم پاک کنم دلم روزام روزامو تو گالری بگذرونم. بشم خالق زیبایی و با آدم بزرگا در مورد هنر یا فیلم یا خلاصه یه چیزی گپ بزنم. نه اینکه همش مجبور باشم از صحبت کردن با آنا تفره برم. خدایا اون کودنه. آدم احساس میکنه اتمالا یه زمانی یه وقتی حرفی برای گفتن به خودش داشته، اما حالا همه چی درباره بچه است. به نظرت به اندازه کافی گرم گرفتمش؟ نکنه خیلی گرمش باشه چقدر شیر باید درست کنم و اون همیشه اونجاست خیلی وقتا احساس میکنم مثل یه بخش مجزا میمونه کارم شده نگاه کردن به بچهه اونم وقتی که آنها استراحت میکنه تا مواظب باشم نیفته نیفته چیزی که به طور غریبی عصبی کننده هست من وفادارانه مواظبشم. حواسم بهش هست تکونش میدم هر بار که قطار رد میشه به خودش میپیچو از جا میپره هر بار که تلفن زنگ میزنه اونا خیلی نازوک و شکنندن. هستن؟ مادرش اینو میگه و من نمیتونم باهاش مخالفت کنم از خونه میام بیرون و قدم میزنم کند و لندوک پنج و حیاتون ورتر توی خیابون بلنهیم قدمان بلند نیستن امروز زنه در رو باز نمیکنه خودش باز میکنه، شوهره تام لباس یه سره پوشیده با یه جفت چکمه یه کار. با این پیراهنش خوشقیافه به نظر میرسه. البته نه به خوشقیافه اسکات. اون ریزتر و رنگ پریده تره. یکم به هم نزدیکن و وقتی بهش نگاه میکنی متوجه این موضوع میشی. اما خب بد نیست. یه آن چشمش به من میفته. جناب تام کروز لبخند میزنه و بد میره. حالا فقط منم و اونو بچه. پنج شنبه شانزدهم آگست ۱ بعد از ظهر من تسلیم شدم. احساس می کنم خیلی بهترم. انگار هیچی ناممکن نیست من آزادم میشینم رو تراس و منتظر بارون میشم. آسمون بالا سرم سیاهه پرستوها حلق حلقه زدن و پرواز میکنن هوا ابری و مرتوبه. اسکات یه ساعت دیگه یا بیشتر میاد خونه و من باید بهش بگم اون فقط یکی دو دقیقه دلخور میشه مجبور میشم صبر کنم تا حالش خوب شه خب منم همه روزم روزمو تو خونه نمیشینم یه سری برنامه ها دارم میتونم یه دوره عکاسی کنم یا تو بازار یه قرفه بگیرم و جواهرالات بفروشم میتونم آشپزی یاد بگیرم حتی ای که بودم یه معلمی داشتم که یه بار بهم به گفت من یک کتبان و معشوقه خداموزم چیزی رو که اون زمان میگفت نمیفهمیدم کنم داشت سعی کرد بگه من ممکنه یه آدم لجام گسیخته بشم یه عاشق، همسر، ندیمه، مدیر گالری، پرستار بچه و یه سری چیزای اینجوری البته الان راجع به حرفاش همچین نظری ندارم پس من فردا میخوام کی باشم من واقعا منظورم دست کشیدنه، لقات فقط بیرون میریزه. ما نشسته بودیم اونجا دور میز آشپزخونه. آنا با بچه روی دامنش و تام بی مقدمه برگشته بود. بنابراین اونم اونجا بود، یه فنجون قهوه می و این خنده دار بود. به هیچ وجه دلیلی برای حضور من اونجا و اون لحظه وجود نداشت. بدتر از اون اینکه من احساس راحت بودن نمی کردم، هنگاری که سرزده اومده باشم. بدون اینکه واقعاً راجع بهش فکر کنم گفتم من یه شغل دیگه پیدا کردم بنابراین نمیتونم بیشتر اینجا باشم. نگاه نگاهم کرد. به نظر نمیرسید رسید حرفمو باور کرده باشه. فقط گفت اوه این خجالت داره. و من تونستم بگم منظورم منظورمو متوجه نشده. به نظر می رسید آروم شده. حتی از من نپرسید چه شغلی که این خودش یه تسلا بود چون من فکر نکرده بودم چه دروغ متقاعد ای برای توجیهش پیدا کنم. به نظر می رسید که تام با ملایمت شگفت زده شده. گفت: "ما دلمون برات تنگ میشه." اما اینم دروغ بود. تنها کسی که واقعا مأیوس میشه اسکاته. بنابراین من باید به چیزی که می خوام بهش بگم فکر کنم. شاید بهش بگم تام به هم حرفای نیشدار میزد همین می تونه پرونده رو مختوم اعلام کنه پنج شنبه بیستم سپتامبر دو و دوازده صبح ساعت از هفت گذشته هوای بیرون با اینکه سرده اما اینقدر زیباست که انگار چهار طرف این پهنه سرد و سبز باغ منتظر سرنگشت های تا با نوازشی زنده بشه چهار ساعت بلند شدم، نمیتونم بخوابم، الان چند روزه که نخوابیدم از این حال متنفرم، از بیخوابی بیشتر از هر چیز دیگه ای متنفرم فقط دراز میکشم، مغزم کار میکنه، تیک تیک تیک تیک همه جا میخاره، میخوام برم سرم و بشورم میخوام برم بودو هم. برم تو جاده و تو یه مسیر قابل تغییر از بالا به پایین راه برم میخوام تا کنار ساحل برونم، هر ساحلی، میخوام کنار دریا قدم بزنم. من و برادر بزرگم قرار بود بریم تو جاده ویل بگردیم. ما یه همچین نقشه هایی داشتیم. من و بن. البته بیشتر نقشه بن بود. اون خیال پرداز خوبی بود. ما میخواستیم از پاریس تا کاتدیازور رو با موتور بگردیم یا تمام مسیر ساحل اقیانوس آرام امریکا رو از سیاتل تا آنجلس. ما میخواستیم ردپای چگوارا رو از بوئنوس آیرس تا کاراکاس دنبال کنیم. شاید اگه من تمام این کارا رو میکردم میرسیدم به جایی که باید باشم و همیشه خوشحال بودم. اما من این کارا رو نکردم. شاید چون بن هیچ وقت اون قدر از پاریس دور نشد. اون هیچ وقت تا, تا کمبریج نرفت. اون دهم آگست مرد. سرش زیر چرخای تریلی خورد شد. هر روز دلم براش تنگ میشه. فکر کنم بیشتر از هر کسی اون مثل یه حفره بزرگ تو زندگیم وسط روحم یا شاید اون فقط شروع روحمه نمیدونم حتی نمیدونم که تمام این چیزا واقعا درباره بنه یا درباره هر چیزی که بعد اون اتفاق افتاده همه اینا رو میدونم یه لحظه چوب خطای زندگی به من میگه همه چی خوبه و زندگی شیرینه و من هیچی نمیخوام لحظه یه بعد نمیتونم تحمل کنم همه جا هستم لیز میخورم و دوباره بلند میشم برا همین میخوام برم پیش یه روان درمانگر اما این ممکنه خنده دارم باشه من همیشه فکر کردم ممکنه کاتولیک بودن بامزه باشه میتونی بری تو اتاقک که اعتراف خودتو سبک کنی با یکی حرف بزنی و بعد بخشیده بشی هرچی گناه از خودت دور کنی و پاک بشی درست مثل یه ورق سفید. البته این صد درصد همون کار نیست. من یه سر عصبی‌ام اما اخیرا نمیتونم بخوابم و اسکات تو جلدم و تشویقم میکنه که برم. بهش گفتم به نظرم حرف زدم با کسایی که میدونم تو مخشون چی میگذره سخته. من خیلی راحت میتونم راجب این موضوع حرف بزنم. اون گفت این که آدم میتونه هر چیزی رو به فرد غریبه ای بگه یه اصله. اما این حرف کاملا حقیقت نداره در واقع آدم نمیتونه هر چیزی رو بگه. تفلکی اسکات نصف چیزا رو نمیدونه. اون عاشق منه خیلی زیاد. اونقدر که باعث میشه من مدام درد بکشم. من نمیدونم چطور این کارو میکنه. دارم دیوونه میشم. حمو باید یه کاری بکنم و حداقل احساسی شبیه عمل داشته باشم. تمام اون نقشه هایی که داشتم، دوره های عکاسی و کلاسای آشپزی وقتی از بین میره که یه ذره حس بی معنی بودن بهم به بدن. انگار که من به جای زندگی الانم یه زندگی واقعی دارم. من نیاز دارم چیزی رو که باید انجامش بدم پیدا کنم، یه چیز غیر قابل انکار. من نمیتونم این کارو بکنم. نمیتونم فقط یه همسر باشم. نمیدونم چطور بقیه این رو میکنن. واقعا هیچی نیست، اما باز تو خونه میشینم و انتظار میکشم، میشینم و انتظار میکشم تا مردم بیاد و عشقشون اسارم کنه. همونجور که همه این کارو میکنن. یا اینگر چیزی توش هست که تو رو دیوونهی خودش کرده اصر خیلی وقت منتظرم قرار ملاقات نیم ساعت قبل بود و من هنوز اینجام تو اتاق پذیرایی و تقطق -تق میزنم روی مجله وگ فکر کنم بهتر بلند و برم بیرون قرار ملاقات دکترها رو میدونم و روان درمانگرا فیلم معمولا منو به این باور رسوندن که اونا بعد از پنج دقیقه با لگت پرتت میکنن بیرون هالیوود به طور واقعی در مورد این نوع از روان درمانگرها که تو را به NHS ارجا میدن حرفی نمیزنه. میرم سمت پذیرش و به اون خانمه میگم که خیلی وقت منتظرم. دیگه دارم میرم بیرون که در مطب دکتر باز میشه و مردی که خیلی بلند قد و لندو که جلوی چشمم ظاهر میشه. معدبانه به هم نگاه میکنه و دستشو میاره سمتم. میگه خانم هیپفل خیلی متاسفم که شما رو منتظر نگه داشتم. و من فقط بهش لبخند میزنم و میگم اشکالی نداره. تو یه لحظه حس میکنم که خب اشکالی نداره. من همش یکی دو دقیقه است که باش آشنا شدم. ولی میشه فهمید که آدم صادقیه. به نظرم صداش نرم و آهسته است و کمی با لحجه. که البته به خاطر اسمش یعنی دکتر کمال آبدایک انتظارشو داشتم. حدس میزنم باید عواست دهی سی زندگیش باشه. هرچند خیلی جوونتر به نظر میرسه با پوست تیره و به شدت چرب. میتونم تصور کنم که با انگشتای دراز و باریکش به هم دست میزنه. تقریبا میتونم رو بدنم حسش کنم. ما به چیزای اساسی صحبت نکردیم، فقط یه جور جلسه معارفه بود. اون از هم میپرسه که مشکل چیه و من درباره این حمله‌های هراس باهاش حرف میزنم، درباره بیخوابی علکی بهش میگم که شبا خیلی وحشت زده از خواب بیدار میشم و باز خوابم میبره او میخواد یه ذره بیشتر راجبش حرف بزنم اما من هنوز آماده نیستم ازم میپرسه که مخدر مصرف میکنم یا مثلا الکل؟ میگم که این روزا عادت دیگه ای دارم از شیفته چشاش میشم فکر کنم میدونه منظورم چیه بعدش احساس میکنم انگار باید یه ذره تر باشم برا همین درباره بسته شدن گالری حرف میزنم و اینکه من همیشه هر چیزی رو ول میکنم و دچار فقدان جهت هستم در واقع من خیلی وقتا تو ذهنم زندگی میکنم اون خیلی با باهام صحبت نمیکنه فقط گاه و بیگا یادداشت برمیداره اما من میخوام حرف زدنش رو بشنوم برا همینم ازش میپرسم که اهل کجاست میگه میدستان توی کنت اما چند ساله که برگشتم کورلی. خودش فهمید این اون چیزی نبود که میخواستم و یه لبخند ظالمانه تحویلم میده. وقتی میرسم خونه اسکات منتظرمه. یه نوشیدنی دستش گرفته و میخواد همه چی رو براش تعریف کنم. میگم خوب بود. ازم راجع به روان درمانگر میپرسه. این کارو دوست دارم. به نظرم خوبه؟ دوباره میگم خوبه. چون نمیخوام بدون خیلی علاقه مندم ازم میپرسه که درباره بنم صحبت کردیم اسکات فکر میکنه همه چیزیره سر بنه ممکنه راست بگه ممکنه منو بهتر از هر چیزی که خودم فکر میکنم بشناسه سهشنبه بیست و پنجم سپتامبر دو و دوازده صبح امروز زود بیدار شدم اما یه چند ساعتی خوابیدم که نسبت به هفته گذشته ی پیشرفته یه جورایی وقتی از رخت خواب بیرون می اومدم، حس تازگی میکردم برا همین با وجود اینکه روتراس رو تراس نشسته بودم، تصمیم گرفتم یه قدمی بزنم. نفهمیدم کی خودم رسوندم پایین. تنها جایی که این روزا برای رفتن به ذهنم میرسه رسه، یا رفتن به کلاس یوگا یا پیش روان درمانگرم. گاهیم میرم پیش تارا. خلاصه وقتم زیاده، تو خونه و اصلا نگران خستگی نیستم. از خونه میزنم بیرون، مستقیم دور میزنم و بعدشم وارد خیابون کینگلی میشم. از جلوی بار روز رد میشم. ما همیشه میریم اونجا. نمیدونم چرا دیگه نرفتیم. هیچ وقت دوست ندارم افراد کنم. مثل خیلی از زوجایی که درست نزدیک چهل سالگی تو نوشیدن زیاده روی میکنن و برای چیزی بهتر به هر دری میزنن. شک دارم اون ادمای شجایی باشن. شاید با این روش بشه از شر چیزی که دوست نداریم خلاص شیم. از بار رد شو. از فروشگاه ها رد شو. نمیخوام خیلی دور شم. فقط میخوام یکم دور بزنم که پاهام باز شه. صبح زود هوای بیرون عالیه قبل از باز شدن مدرسه، قبل از اینکه قطار هومه بیاد، خیابون خالی و تمیزن. روز آبستن هر چیزیه. دوباره برمیگردم سمت زمین کوچیک بازی قدم میزنم تنها فضای سبز مفلوکی که ما داریم حالا خالیه اما در عرض چند ساعت پر میشه از ولولهٔ بچههایی که تازه را افتادن با مادرها و پرستاراشون دخترای انجمن یوگام میان اینجا پا خیس عرقن موقع تناب کشی و بعد ناخونای مانیکور شدهشون دور لیوانای قهوهشونه از پارک رد میشم و میرم سمت خیابون رزبری اگه به پیچم سمت راست توی راه از جلوی گالریم رد میشم. چیزی که گالری بود حالا شبیه فروشگاه خالیه. اما نمیخوام اون وری برم چون هنوز یه سر عذیتم میکنه. خیلی سعی میکنم تا موفق شم. مکان اشتباه، زمان اشتباه، هیچ مخاطبی برای هنر تو هومه شهر نیست. عوضش میپیچم براست. از تسکو اکسپرس رد میشم، از جلوی بار که مردم دسته دسته میرن اونطور رد میشم و برمیگردم سمت خونه. حالا باز پشیمون شدم. دارم ذره ذره عصبی میشم. میترسم با خانواده واتسون برو بشم. خیلی تابلوه ها. اگه الان اونا رو ببینم. به وضوح معلومه که شغل تازه‌ای ندارم و بهشون دروغ گفتم و میفهمن که نمیخوام تو خونهشون کار کنم یا وقتی که زنشو میبینم ناشیگری کنم. تام کاملا منو نادیده میگیره اما آنا موضوع رو شخصی میکنه. برای همین واضحه که خیال کنه شغل کوتاه مدتی مثل پرستار بچه برا من آخرشه و رها کردن کارم لابد به خاطر اونه یا به خاطر بچش. حقیقت اینه که در هر صورت موضوع ربطی به بچهش نداره. هرچند بچه مدام ونگ ونگ میکرد و همین باعث می شد که اون زیادی بهش محبت کنه. این همه چی رو خیلی پیچیده میکنه. البته نمیتونم اینو براش توضیح بدم. به هر حال گمونم این یکی از دلایلی باشه که خودم و از این کار معاف کردم و برای همینه که دیگه نمیخوام بادسانه رو ببینم یه جایی تو دلم امیدوارم اونا برن، فقط برن میدونم زن دوست نداره اینجا باشه، اون از این خونه متنفره متنفر از زندگی با چیزمیزای همسر سابق شوهرش، متنفر از قطارا گوشه ایوامی و به مسیر جاده زیر پل هوایی خیره میشم نسیم سرد و مرتوبی یه ذره لرز به ستون فقراتم میندازه. این کار مثل قلتوندن یه تخت سنگ میمونه برای دیدن چیزی که زیرشه. پر از خزه و کرم و خاک. یادم انداخت وقتی که بچه بودم و با بن توی باغ بازی میکردیم به گرباقه توی طالاب نگاه میکردیم. همینطور راه میرم. خیابون تمیزه. هیچ اثری از تامو آنا نیست. و چیزی تو دلم نمیتونه در مقابل همین یه ذره وضعیت دراماتیکی که شکل گرفته و در واقع کاملا محکوم به شکسته مقاومت کنه. اصر. اسکات به هم زنگ زد که بگه تا دیر وقت سر کار میمونه و این خبر تازهی نبود. استراب دارم. تمام روز همین طور بودم. هنوز نتونستم مهارش کنم. دوست داشتم اسکات باشه. بیاد خونه و آرومم کنه. و خب حالا معلوم شد چند ساعتی طول می کشه تا برسه مغزم دور برداشته میچرخه و میچرخه و باید تمام شب بیخوابی بکشم نمیتونم اینجا بشینم و به قطار را نگاه کنم خیلی وحشت زده و عصبی هم. حس میکنم قلبم مثل یه پرنده داره تو سینم بال بالبال میزنه که از قفس بپره بیرون طلاب طلوپ قلبم که آروم تر میشه آسته میرم پایین بیرون جلوی در و از اونجا توی خیابون بلنییم. ساعت حدود هفت و نیم و یه چند تا غریبه دارن از کارشون به خونه برمیگردن. هیچ کس دیگه این اطراف نیست. هرچند چند میشه صدای جیغ و داد رو که تو پارک پشتی بازی می‌کنن شنید. آخرین استفاده‌ها از آخرین روزای آفتابی تابستون قبل از اینکه برا شام صداشون کنن. میرم پایین جاده، سمت ایستگاه. چند دقیقه جلوی پلاک بیست و ایستَم و فکر می‌کنم که زنگ درو در بزنم. چی باید بگم؟ بدو بدو برای شکر اومدم اومدم یک کم گپ بزنیم درشون نیمه بازه اما نمیتونم کسی رو اون تو ببینم راهمو رو میگیرم و میرم و بدون اینکه واقعا فکر کنم کجا میخوام برم میرم پایین تو زیر گذر. تقریبا به نصفه راه رسیدم که سر و کله قطار پیدا میشه با شکوه مثل یه سمین لرزه آدم احساس میکنه به سرعت از توی تنش رد میشه خونو به جوش میاره پایینو نگاه کردم و یه چیزی رو زمین دیدم یه رشته موی عرقوانی گیس شده سفت و محکم بافته شده، و خرابم نشده احتمالا یکی که داشته میدویده انداختتش نمیدونم چرا تنم مرمور شد میخوام زودی برم بیرون برم و دوباره برگردم تو روشنایی توی راه که برمیگشتم دیدمش که با ماشینش رد شد چشمامون برای چند ثانیه به هم گره خورد و به هم لب زد